کرامیان درود بر شما فایل آوایی سوم از کتاب برهان الیت برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا نوشته نون فخر رو با هم آغاز میکنیم صفحه 26 عنوان اول هفته دوم مسئله روح عنوان دوم آیا وجود احساسات دلیل بر وجود روح است مؤمن امیدوارم یه هفته گذشته به مسئله روح فکر کرده باشی و حتی امیدوارم خودت به جواب سؤالاتی که میخواستی راجع به روح بپرسی رسیده باشی. چرا که مسئله روح بسیار بازه و ملموس است. ناباور برهان نظم هم به نظرت بازه و ملموس میامد اما دیدی که سراسر اشکال بود. بنابراین زود قضاوت نکن. گاهی آنچه تصور میکنیم بسیار ملموس و مشهود است چیزی نیست مگر خطای قوه درک ما اما حالا که این را گفتی بگو ببینم من باید به چه چیز درباره روح فکر میکردم مؤمن مثلا به اینکه اگر ما روح نداشته باشیم پس چطور میتوانیم دچار احساساتی همچون عشق نفرت ترس شادی و غم شویم آیا میتوان احساسات را با یک مغز کاملا مادی توجیه کرد؟ ناباور. ظاهرا احساسات ما تحت تاثیر واسطه‌های شیمیایی و هورمون‌های مترشحه داخلی بدن که بر روی سلول های سلولهای مغزی اثر می‌گذارند ایجاد می‌شود و یا از بین می‌روند. وقتی یک واسطه شیمیایی مترشحه در مغز همچون دوپامین، استیل سروتونین و یا یک هرمون ترشح شده از قدد درون ریز همچون آدرنالین قده فوق کلیوی بر روی گیرنده های سلول های مغزی می نشیند می تواند خلق و خو و احساسات ما را ایجاد کند. اگر جلوی ترشوه این مواد گرفته شود و یا به وسیله یک دارو در مقابل تاثیر این باسته های شیمیایی بر روی گیرنده های سلول های مغزی، صدی گذاشته شود، احساسات ما تحت کنترل در می آیند. همچنین اگر مواد دارویی بتوانند عمل واسطهای شیمیایی را بر روی گیرنده های سلول های عصبی تقلید کنند، احساسات مشابهی را در ما ایجاد می کنند. اساس کار داروهای اعصاب بر همین است که بتوانند عمل واسطهای شیمیایی را تقلید کنند و یا جلوی عمل این واسطه ها را بگیرند و یا گاهی باعث ترشوه بیشتر آنها شوند و بعضی مواقع هم باعث ماندگاری بیشتر آنها در مغز کردند. یعنی جلوی تجزیه این واسطه های شیمیایی را بگیرند تا آنها مدت بیشتری در کنار سلول های مغزی بمانند. واسطه های شیمیایی داخل مغز و هرمون ها و داروها و مواد مخدر شیمیایی می‌توانند تمام احساسات ما انسان ها از خوشحالی عصبانیت افسردگی نشاط تا عشق مادرانه را تحت تأثیر قرار دهند وقتی احساسات ما تا این حد وابسته به ترکیبات شیمیایی هستند چرا باید گفت یک انصر غیر مادی همچون روح برای شکلگیری احساسات در کار است. عنوان آیا وجود خواب و رویا دلیل بر وجود روح است؟ مؤمن در مورد خواب و رویا چه می‌گویی؟ اینکه روح ما در زمان خواب به جاهای دیگر می‌رود و افراد مختلف می کند را ملاقات می‌کند را چگونه می‌توان توضیح داد؟ ناباور اتفاقا بعضی داروهای شیمیایی قادرند ایجاد کابوس کنند. پاورقی: بعضی داروها مانند دونپزیل، ریواستیکمین، آتورواستاتین، سیمواستاتین و پروپرانولول می توانند گاهی باعث تاثیر بر رویاها شوند و بعضا ایجاد کابوس شبانه کنند. ادامه مطلب. همین خود شاهدی است بر اینکه رویاهای ما تصاویری هستند. که مغز ما میسازد و اگر قرار بود واقعا روح ما از بدن جدا شود و به جاهای دیگر برود آنگاه هیچ دارویی نمیتوانست برای روح ما تعیین کند که به کجا باید برود به یک جای مفرح یا یک مکان ترسناک عنوان برهانی برای اثبات وجود روح مومن. بسیار خوب اگر فکر می که این پدیده ها هیچ کدام دلیل بر وجود روح نیست پس اجازه بده با یک برهان وجود روح را ثابت کنم. اما پیش از آن بگو سؤالاتی که میخواستی در پایان ملاقات قبلی بپرسی چه بودند؟ ناباور من فکر می که تو در پایان صحبتهای هفته قبل خلاصه ای از برهانت را گفتی. آنچه نقطه سقل استدلال تو بود این بود که اولا به وجود روح اعتقاد داشتی؟ و سانیان آن را غیر مادی می‌دانستی. سپس استدلال کردی که ترکیب یک چیز غیر مادی با ماده امری نیست که بشود آن را به تصادفات و اتفاقات طبیعی ربط داد و ناچار باید دست یک خالق دانا و توانا در کار باشد. اکنون بیا و درستی ارکان استدلالت را به من ثابت کن. اول بگو چگونه مطمئنی که روح وجود دارد. پروازه هست که برای اثبات وجود روح اول باید بگویی که روح چیست. مومن وقتی ماده را بررسی می کنیم متوجه می که ماده قابل تقسیم و تجزیه و اجزای سازنده است. یک سنگ را می توان به دو قسمت تقسیم کرد و قسمت های تقسیم شده اش را هم باز می توان به اجزای کوچکتر تقسیم نمود. در واقع وقتی که می یک سنگ منظور ما است که برای مشاهده کننده یک جسم واحد است. اما در واقع یک جسم واحد نیست بلکه از تعداد بیشماری واحد های کوچکتر تشکیل شده است. ذهن ما ما را فرید می دهد و برای آن سنگ یک ذات واحد فرض می کند. و به ما چنان می نماید که گویی داریم از یک چیز صحبت می کنیم. حالا که آن سنگ یک ذات یا یک چیز واحد نیست و از زباد یا چیزهای خردتری تشکیل شده که هر کدام از آنها برای خود وجود مستقل دارند. با تقسیم آن سنگ به بخش های کوچکتر متوجه می شویم که نصف سنگ، یک چهارم سنگ، و یک هشتم سنگ هم از اول وجود داشتند و همگی در کنار هم قرار گرفته بودند. اکنون قرار گرفتن این واحدهای کوچک سازنده ماده در کنار هم باعث می شود ما از شیعی که آنها می سازند به اشتباه تصویر یک شیء واحد داشته باشیم و نامی را بر روی آن بگذاریم. سپس همین نامگذاری ما را بیشتر به اشتباه می و مطمئنتر می که آن شیء یک چیز واحد با ماهیتی مشخص و مستقل است. ما کوه دماوند را یک شیء میدانیم. در حالی که کوه دماوند فقط یک مفهوم ذهنی است که در مغز ما ایجاد شده است. واقعیت کوه دماوند اجزاء تشکیل دهنده مستقل آن هستند که از اطوم ها هم کوچکترند. واحدهای سازنده ماده هرچه باشند، الکترون، کوارک و امثالهم، اینها اجزاء واقعی مستقل کوه دماوند هستند و هر کدام برای خودشان هستی مستقل و واقعی دارند. این ذرات واقعی اگر مانند ما خداگاهی داشتند شاید حتی نمی‌دانستند که بخشی از یک کوه بزرگ هستند. یک الکترون در یکی از اتمهای کوه دماوند برای خودش هستی مستقل دارد. این ذهن ماست که مجموعه عظیمی از ذرات بیشماری را که در یک حدود جغرافیایی کنار هم قرار گرفته اند، از بقیه مجموعه ذرات کنار آن که کوه و زمین اطراف آن را می سازند. جدا می کند و تصویری واحد از این مجموعه خاص را برای خود می سازد و نام دماوند را به این تصویر الساق می کند. حال فرض کن که اجزاء واقعی کوه دماوند هر کدام شعور و خداواهی داشته باشند و زبان ما را بفهمند و تو بروی مقابل کوه دماوند بیستی و بگویی سلام کوه دماوند. از آنجا که واقعا یک موجود واحد به نام کوه دماوند وجود ندارد، همه آن اجزا اهم از الکترون ها و کوارک‌ها و یا هر ذره بنیادین و مستقل و تجزی ناپذیر دیگری به صدا در میآیند و می‌پرسند: آیا با من بودی؟ اگر تو به آنها بگویی که من با شما نبودم بلکه با کوه دماوند بودم، آنها خواهند گفت چیزی به نام کوه دماوند وجود ندارد که تو بخواهی به آن سلام کنی و او جوابت را بدهد. زبات و چیزهای واقعی ما هستیم. اکنون به من و خودت هم با همین دیدگاه نگاه کن. فرض کن تمام ذرات هستی من و تو هر کدام شعور و خداگاهی داشتن و می توانستند حرف بزنند. حالا اگر من به تو سلام کنم، از ذرات بدن تو هر کدام بگویند آیا با من بودی من می توانم در پاسخ بگویم خیر من با نفسی به نام ناباور بودم نفسی که بر برخلاف کوه دمابند یا بدن من و تو قابل تجزیه به اجزای کوچکتر سازنده اش نیست نفسی که یک واحد است یک من است و نمی توان تصور کرد بتواند به دو من تقسیم شود میتوان تصور کرد که هر کدام از اجزاء بدن ما به واحدهای های سازندهش تقسیم شود و هر واحدی برای خود هستی مستقل و کاملی داشته باشد که دیگر قابل تقسیم به واحدهای کوچکتر نباشد اما درباره من کسی نمی شود این تصور را کرد من ما یک واحد غیر قابل تجزیه است و نصف من وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد. اگر فرض کنیم که من تو به دو من تقسیم شود، تنها یکی از آنها میتواند تو باشی. آن دیگری یک من دیگر است که تو نیستی بلکه دیگری است. منظورم از این استدلال این است که یک واحد در بدن و هستی ما وجود دارد که برخلاف هر یک از اندام ما قابل تقسیم به واحدهای های کوچک سازندهش نیست یعنی غیر قابل تجزیه است یعنی همچون یک ذره بنیادین غیر قابل تجزیه و تقسیم است و از اینکه هست خردتر تر نمی شود این واحد را می توانیم من نفس خود یا روح بنامیم این واحد نمی‌تواند هیچ کدام از واحدهای سازنده بدن ما باشد. بدن ما مادی است و واحدهای الکترون الکترون‌ها و کوارک‌های بیشعور هستند و نمی‌توانیم بگوییم من یک انسان یکی از این واحدهای سازنده است. من پیچیده انسان کجا و یک واحد سازنده ساده مادی همچون الکترون و کوارک کجا؟ من یک انسان غیر قابل تجزیه است و چون در بین واحدهای غیر قابل تجزیه مادی با هیچ کدام قابل مقایسه نیست پس من انسان یک واحد غیر مادی است میبینی که ناچار باید بپذیریم با یک واحد غیر مادی طرف هستیم من ما یا روح ما یک واحد تجزیه ناپذیر است که در بدن ما تعبیه شده و این را با هیچ محاسبه ای نمیتوان ممکن فرض کرد یعنی باید گفت که این ترکیب از عهده تصادفات مادی و فیزیکی خارج است اینجاست که به دست قدرت یک خالق توانا و هدفمند محتاج می شوید اجازه بده دقایقی به گفته هایت فکر کنم. نمیخواهم فقط جواب داده باشم. بنابراین باید درست بفهمم که چه گفتی. ناباور چند دقیقه از پنجره به رفت و آمد اوتوموبیل در خیابان نگاه کرد. از مردم که چشمش معلوم بود که به نقطه خاصی خیره نشده و عمیقا در حال تفکر است. بالاخره رویش را به سمت مؤمن برگرداند. و اینطور شروع کرد ساهران درست میگویی من میتوانم تصور کنم که هر کدام از اندام های من مانند دست، پا، چشم، گوش، زبان که قطع شفت و از بدنم جدا گردد من همچنان من بمانم میتوانم به خودم بقبولانم که اگر مغز من به دو نیم تقسیم شود دو من به وجود می آید اما ناچارم بپذیرم اگر هر دو من به وجود بیاید تنها یکی از آنها خود من هستم و من دیگر من نیستم بلکه دیگری است. یعنی شخصی دیگر است این من حاصل تقسیم مغز من نمی تواند نصف من باشد من یا به تمامی من هستم و یا اصلا نیستم. من چیزی است که نیمه بودن برایش معنی ندارد. نیم من معنی ندارد. پاورقی در فرهنگ اسلامی نفس و روح یک چیز نیستند. اما روی کرد صرفا فلسفی به هر دو تقریبا مشابه است. و اگر قرار باشد وجودشان مبنای یک برهان برای اثبات خدا قرار گیرد نمی توان دلیل فلسفی بر جدایی آنها اقامه کرد و نهایتا تنها می توان به اثبات یکی از آنها حمت گمارد اینکه ذات واحده اثبات شده در پایان این برهان را کدام یک از این دو بنامیم امری صلیقهای است من در اینجا نفس و روح را به ضرورت محدودیت در ادلهٔ فلسفی برای تفکیک آنها یکی گرفتم ادامه مطلب بسیار خوب فرض میکنیم که سخن تو درست باشد و من یک واحد باشد که قابل تجزیه نیست حالا سؤال این است که آیا من من لزوماً غیر مادی است یا اینکه ماده هم میتواند در شرایط خاصی یک واحد غیر قابل تجزیه همچون نفس یک انسان را ایجاد کند در واقع باز هم باید برگردیم سراغ داستان شگفت زده شدن. مؤمن که از این حرف ناباور یک خورده بود با دلخوری گفت به شگفت زده شدن چه ربطی دارد؟ آنکه که مربوط به برهان نظم بود. ناباور ببین من و تو اینطور تصور می کنیم که اجزای سازنده ماده احتمالا الکترون و کوارکا و دیگر ذرات ظاهرا بنیادینی هستند که فعلا کشف نشده ما تصور میکنیم هر کدام از این واحدهای احتمالا تجزیه ناپذیر برای خودش وجودی مستقل از واحدهای دیگر دارد و در تجمع ظاهری با ذرات دیگر و در تیه قرار گرفتنش کنار ذرات دیگر همچنان یک واحد مستقل میماند و مستقل بودنش را حفظ می کنند. ما فکر می کنیم واحدهای سازنده ماده فضای خودشان را اشغال می کنند و غیر ممکن است در کنار دیگر ذرات بنیادی بتوانند یک مجموعه یک پارچه و واحدی غیر قابل تجزیه تشکیل دهند ما فکر می کنیم که اینها نمی در کنار هم واحدی چنان یک پارچه بسازند که دیگر هیچ جزء مستقلی در آن وجود نداشته باشد و این واحد یک پارچه برای خودش یک واحد تجزیه ناشدنی بنماید مؤمن نباید بگویی یک واحد تجزیه ناشدنی بنماید فعل بنماید به این معنی است که در ظاهر تجزیه نشدنی به نظر بیاید ولی در باطن نامعلوم باشد که هنوز واحد های مستقل سازنده آن برای خودشان استقلال دارند نه ما وقتی به من خود میاندیشیم متوجه میشویم که این منفرد و واحد بودن نفس ما ظاهری نیست. من ما در حال لحظه زمان واقعا یک من تجزیه ناپذیر است به همین جهت هم انتظار می رود که پس از مرگ و تجزیه بدن و جدا شدن ذرات سازنده مغز این واحد همچنان به بودن خود ادامه دهد. ناباور مجددا به بیرون از رستوران خیره شد. پس از دقایقی در حالی که هنوز نگاهش به بیرون از رستوران بود گفت، من یک فرض را در گفته های تو تشخیص می دهم. تو فرض را بر این گرفته ای؟ که تحت هیچ شرایطی اجماع ذرات ماده در مغز ما نمیتواند نفس یا من یا به عبارت امروزی آگاهی ما را به وجود آورد. به عبارت دیگر تو فرض میکنی که ماده را به خوبی می شناسی. ناباور رویش را به طرف مؤمن کرد و اینطور ادامه داد. تو این تصور را حقیقت محض میدانی که ذرات ماده هر کدام در یک فضای محدود به خود وجود دارند و غیر ممکن است که در کنار هم و در شرایط خاصی برای بازه زمانی خاصی بگونه ای به تأثیر و تأثیر روی هم بپردازند که یک واحد جدید را بسازند. واحدی همچون نفس ما انسان ها واحدی که می توان آن را آگاهی، نفس، خود، من، و یا حتی به قول تو روح نامید مؤمن آیا فکر میکنی شناخت من و تو از ذرات ماده تا این حد خطا است آیا تو فکر میکنی ذرات بتوانند گاهی اوقات ذرات نباشند و ممزوج شوند و یک من را بسازند اما هرگاه ما به آنها نگاه میکنیم دوباره خودشان را به صورت ذرات به ما نشان دهند آیا تو فکر میکنی هرگاه به اجزای سازنده مغز نگاه نمی این اجزا به شکلی جادویی ممزوج می شوند و یک واحد غیر قابل تجزیه چون من را می سازند؟ ولی به محض آنکه به آنها نگاه میکنیم دوباره خودشان را به شکل الکترون ها و دیگر ذرات بنیادین کوچکتر و مجزا به ما نشان می دهند؟ ناببر. نه؟ منظورم چنین شعفت بازی نیست. منظورم این است که ما هرگز خود الکترون‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها و یا ذرات کوچکتر از پروتون‌ها و نوترون‌ها را ندیده‌ایم. ما میدان‌های مغناطیسی، جاذبه، نیروی ضعیف و نیروی قوی را ندیده‌ایم. به عبارت بهتر، ما تنها به واسطه ی حواسمان و با تأثیری که مواد و میدان‌ها بر روی حواست ما و یا دستگاههای ما میگذارند با آنها آشنا می‌شوید ما انسان‌ها یک ضعف بزرگ داریم و آن اینکه هرگز نمی‌توانیم از ماهیت واقعی ماده و اشیاء اطرافمان باخبر شویم چرا که محکومیم فقط تأثیر آنها را بر روی حواس خود و یا دستگاه های خود درک کنیم و ارتباط ما با مواد اطرافمان یک ارتباط غیر مستقیم است. ما از طریق تحلیل آزمایش هایی که دانشمندان انجام دادند تصوری از مواد و از الکترون ها و کوارک در ذهن خود می ولی نمی فهمیم که حقیقتاً اینها چه هستند. ما برای درک راحت تری از ماهیت ماده تصوری از مواد اطراف خود در ذهن می سازیم. ما الکترون ها و پروتون ها و هر شیعی را در اطراف خود دارای یک مکان مشخص و یک جرم مشخص در نظر می که با حرکت خود این مکان را تغییر می دهد و در یک خط مستقیم یا غیر مستقیم جابجا جا اما سؤال این است که آیا واقعا ماهیت ماده همین است که ما درک کرده ایم؟ آیا میدانهای مادی همچون میدان مقناطیسی و گرانشی برای ما قابل درک هستند؟ آیا چیستی آنها و استعداد آنها برای ما مشخص و شناخته شده است؟ در قرون گذشته هرگاه انسان نمیتوانست پدیدهای را توضیح دهد، بلافاصله آن را به قدرتهای ماورایی نسبت میداد اکنون بسیاری از آن پدیده ها قابل توضیح علمی هستند آیا مجازیم حالا که نمیتوانیم چگونگی تشکیل آگاهی یا به قول تو روح را توضیح دهیم بلا فاصله دست به دامان وجود یک نیروی فوق طبیعی همچون خدا شویم و پای او را قصد بکشیم مؤمن گویا متوجه یک مسئله نیستی اینطور نیست که نتوانیم توضیح دهیم قضیه این است که ماده به دلایلی که گفتم غیر ممکن است که واحدی تجزیه ناپذیر چون روح یا من را تشکیل دهد واحدهای ماده الکترون و کوارک و امثال هم هستند و واحدی چون من یا آگاهی نمی تواند هیچ کدام از اینها باشد. ناچاریم قبول کنیم این من کار ماده نیست و یک واحد تجسی ناپذیر مادی نیست. ناباور در استدلال تو این فرض قطعی تصور شده که ماده را شناخته ای و دقیقاً میدانی که از واحدهایی که گفتی تشکیل شده و دقیقا مطمئنی چه هایی در این واحدها وجود دارد آیا همه قابلیت های ماده و اصلا ماهیت دقیق ماده برای تو شناخته شده است مؤمن شاید من نتوانم دقیقا همه قابلیت های ماده را بدانم اما میدانم که بخشی از اطلاعات من در سمت راست مغز من است و بخشی در سمت چپ بخشی در جلو و بخشی در عقب ولی واحدهای های سازنده مغز من یعنی همان الکترون ها و کوارکا هر کدام هر جا که هستند در جای خودشان باقی میمانند پس واحدی که روح یا به قول تو آگاهی را میسازد و به اطلاعات مغز من چه در جلوی مغز باشد و چه در عقب مغز دسترسی دارد هیچ کدام از این واحدهای مادی نیست و واحدی دیگر با حقیقتی دیگر است واحدی است که هم در بخش جلوی مغز من است هم در بخش عقب هم سمت راست مغز من است و هم سمت چپ واحدهای مادی چنین نیستند پس حقیقت روح من غیر مادی است ما یک درک شهودی از ماده داریم که قابل انکار نیست اگرچه نمیدانیم ماده دقیقا چیست اما درک شهودی ما به ما میگوید ماده دارای واحدهای سازنده ای است که هر کدام برای خود استقلال وجودی دارند یک الکترون برای خودش به طور مستقل وجود دارد همچنین یک کوارک یا هر واحد بنیادین و تجزیه ناپذیری که در آینده کشف شود برای خودش مستقلاً وجود دارد هر کدام از اینها در نقطه ای از فضا هستند و تنها در آن نقطه وجود دارند اگرچه بر نقاط دیگر هم تأثیر می‌گذارد نمی‌توان قبول کرد هر یک از این واحدها حتی اگر در حد ایجاد میدان الکتریکی و یا گرانشی و یا نیروی قوی هسته‌ای بر دیگر ذرات اطرافش تأثیر بگذارد به این معنی است که وسعت عمل و پیشیدگی لازم جهت ساخت واحدی به نام روح و یا آگاهی را نیز دارد نابابر. زمانی تقریبا همه مردم دنیا به طور شهودی مطمئن بودند خورشید و ستارگان به دور زمین می‌گردند و زمین در مرکز جهان است آیا فکر میکنی شهود تو ممکن نیست و دچار خطا شود شهود یعنی درک مستقیم و بی‌واسطه حقیقت توجه داشته باش که تو هرگز توانایی درک مستقیم ماهیت ماده را نداری و چیزی بجز تأثیرات ماده بر حواس خود را درک نمی کنی. پس چطور می توانی از شهود خطاناپذیر صحبت کنید؟ حالان که حواس انسان ها می تواند آنها را برای یک عمر دوشار خطا کند. چنانکه در مورد احساس مرکزیت زمین این کار را کرد. مومن، آیا فکر می کنی که من تنها با لمس اشیاء و نگاه به آنهاست که نتیجه گرفتم؟ ماده از واحدهای مستقل به وجود آمده است آیا دهها و صدها یافته اخیر دانشمندان بر این تصور صحه نمیگذارد آیا اگر یک گذاری علمی توسط دهها آزمایش و مشاهده تایید گردد و با مشاهدات و گزارش‌های متعدد تایید شده دیگر در انسجام و هماهنگی باشد نمیتوان از درستیش اطمینان حاصل کرد ناباور آیا فکر میکنی تصور تو از ماده با همه دیگر اکتشافات علمی در هماهنگی است و هیچ تعارضی وجود ندارد که اینقدر از بابت آنها مطمئنی مؤمن تو غیر از این فکر میکنی حداقل در مورد های ماده آیا غیر از این فکر میکنی و آیا میشود تصور دیگری داشت چنانکه بتوان به وجود آمدن یک واحد غیر قابل تجزیه همچون روح یا آگاهی را به ماده نسبت داد؟ عنوان فیزیک کوانتوم و ناموجه بودن نیاز به وجود خدا برای خلق آگاهی ناباور آیا از فیزیک کوانتوم چیزی شنیده ای؟ مومن. کمی درباره آن میدانم منظورت چیست؟ ناباور من با مثالی از کشفیاتی که حدود 100 سال پیش درباره ماهیت ماده صورت گرفت به تو نشان خواهم داد آنچه به عنوان دریافت شهودی از ماهیت ماده می گویی نه تنها ممکن نیست درست باشد بلکه قطع غلط است مؤمن بهتر از مثالت در رابطه با همان چیزی باشد که من در باب ماهیت ماده شهودی می نامم اگر درباره چیز دیگری باشد و بخواهیم مثالت را چنان به دلخواه تعمیم دهی که موضوع درک شهودی مرا هم شامل شود نخواهم پذیرفت ناباور خندید و گفت تو هم وقتی بخواهی از نظرت دفاع کنی و استدلال مرا نقد کنی خوب سختگیر می‌شوی به هر حال میفهمم چه میگویی. من از همان موضوع خاص ترک شهودی تو سخن می گویم که از آن برای اثبات وجود روح استفاده کردی و همان را باز میکنم. تو مانند همه انسان ها ذرات ماده را ذراتی دارای جرم و اشغال کننده فضا می‌دانی یعنی وقتی از یک توپ فوتبال یا یک اتم و یا یک الکترون صحبت به میان می‌آید در این تردید نداری که این جسم در یک فضای محدود وجود دارد و گرچه ممکن است بار الکتریکی و یا میدان گرانشی آن در فضا گسترده باشد اما بخش دارای جرم آن در محدوده ای از فضاست که ابعادی را شامل می شود و همین ابعاد مشخص و محدود است که باعث می شود ما هستی یک توپ فوتبال و یا یک الکترون را در یک فضا هستی مجزا از هستی توپ های دیگر و یا الکترون های دیگر فرض کنیم. یعنی هستی هر کدام را مستقل بدانیم. تا اینجا مشکلی نیست؟ مومن با حس تردید به ناباور نگاه کرد و گفت آیا ممکن است بیشتر توضیح دهید؟ ناباور آیا وقتی که یک توپ فوتبال در اینجا روی میز است میتوانی قبول کنی که همان توپ فوتبال در همان زمان بر روی تمام میزهای دیگر هم هست یا نه؟ منظورم از همان توپ فوتبال امواج گرانشی آن و یا آثار آن نیست منظورم دقیقاً خود همان توپ با همه وجودش است. ناباور چند ثانیه به چهره مومن که برای دادن پاسخ مردد بود نگاه کرد و اینطور ادامه داد. بگذار اینطور بپرسم. الان قاشق تو کجاست؟ مومن: در به من است. ناباور آیا این را با تمام وجود و به شکلی شهودی حس می کنی؟ مامن، به واسطه حواسم حس می کنم. اما به هر حال مطمئنم که در بشقاب من است. ناباور، بسیار خوب، این سخن تو را اینطور تحلیل می کنم که تو وقتی قاشقت را در بشقابت می بینی و آن را لمس می اگرچه وجود آن را نه طور مستقیم بلکه به واسطهٔ هواست درک میکنی اما آنقدر شواهد گوناگون داری که در وجود قاشقت در بشقابت تردید نمی‌کنی و این اطمینان را با شهود یعنی با درک مستقیم و بیواسطهٔ حقیقت حضور قاشق در بشقاب یکی می‌دانی. تو قاشقت را لمس می‌کنی، به آن نگاه می‌کنی. با آن بر روی بشقاب میزنی و صدایش را میشنوی و من و تمام حاضرین در این رستوران هم شهادت میدهیم که این قاشق در بشقاب تو قرار دارد تو به یاد داری که با این قاشق غذا در دهانت اید پس حافظه تو هم معید تصور تو است اینها همگی شواهدی هستند که تعیید کننده یک چیزند لذا آن را حقیقت محض می نامی. چرا که اصلا برای من و تو راهی بالاتر از جمع همه این جهت کسب اطمینان نیست. تجربیات تو از اجسام اطرافت همگی کما بیش چنینند و لذا بعد از سالها زندگی و درک اجسام اطرافت با میلیونها تجربه کوچک و بزرگ دیگر شک نداری هر جسمی دارای جرم است و در ابعادی مشخص محدود است. اکنون این دو یعنی جرم و اشغال فضایی مشخص و محدود از خصوصیات بدیهی اجسام به نظر می رسند. مومن، بله، فکر می کنم همین است که می گویی. به هر حال این همه تجربه شخصی من در مورد اجسام مادی که خودم هم از آنها درست شده ام هم و هماهنگ بودن تمام مشاهدات من در تایید این تصورم از ماده می تواند اطمینان بخش باشد اگرچه ممکن است یک فیلسوف به من بگوید که تو هرگز به طور مستقیم اجسام را درک نمی کنی و ماهیت ماده را نمی فهمی ولی من نمیتوانم این گفته را چیزی جز یک بازی فلسفی بدانم و به انبوه تجربیات و مشاهدات هماهنگ خود پشت کنم و درکم از ماده را در تبیین برهان اثبات روح به نبرم و بگویم شاید همین درک ساده و غیرقابل انکار من از ماده غلط باشد و نتواند در پای ریزی یک برهان بهکار رود. بر. اگر این درک ساده اما بسیار پرپشت‌بانه من از ماده که تجربیات لحظه لحظه عمرم از آن پشتیبانی می‌کند قابل اتکا نباشد دیگر کدام نتیجه فلسفی و کدام برهان را می‌توان قابل اعتماد است؟ دیگر به چه چیز می‌توان اطمینان داشت و ها را بر چه چیزی می‌توان استوار کرد اصلاً زندگی را بر چه باوری میتوان بنا کرد؟ ناباور آیا کاغذ داری؟ مامه؟ بله بیا بگیر شلخته تو برای بحث فلسفی آمده ای آنگاه حتی یک خودکار و کاغذ هم نیا برده ای؟ در حالی که میخندید شروع به رسم اشکالی روی کاغذ کرد و در همان حال چنین توضیح داد فرض کن که یک دستگاه پرتاب کننده داری که به شکلی بی و تصادفی گلوله های به سمت یک دیوار پرتاب می کنند. بین پرتاب کننده و دیوار یک صفحه را به عنوان مانع قرار می دهید. در این صفحه دو شکاف ایجاد می کنید. یکی از شکاف ها را می بندی و دستگاه پرتاب ساچمه را روشن می کنید. سپس، نقاطی را که گلوله های کرده از شکاف یک بر روی دیوار ایجاد می کنند بررسی می کنی. مشاهده می که بیشترین برخورد گلوله در یک قسمت از دیوار در پشت مانع صورت گرفته و هرچه از آن قسمت دور می برخورد کمتری تری می اگر بخواهی نموداری رسم کنید که نشان دهد میزان برخورد به دیوار چگونه توضیح شده است نمودارت به این شکل خواهد بود حال اگر شکاف یک را ببندی و شکاف دو را باز کنی و شروع به پرتاب گلوله نمایی این بار نیز نمودار توزیع برخورد گلوله بر روی دیوار به همان شکل خواهد بود اما بیشترین برخورد در طرف دیگر دیوار صورت میگیرد طرفی که در مقابل شکاف دو قرار دارد این بار نمودار توضیح برخوردها چنین است حال هر دو شکاف را باز میگذارید و به پرتاب گلوله می پردازی طبعا انتظار داری که نمودار توزیع برخورد گلوله ها به دیوار مقابل حاصل جمع، این دو نمودار باشد مومن بله مگر غیر از این می شود ناباور غیر از این نمی شود نمودار توضیح به این شکل خواهد بود که در واقع حاصل جمع همان دو نمودار است گرامیان برای ملاحظه نمودارها ها پیشنهاد می کنم کتابو کتاب و دانداد بفرمایید و مشاهده کنید. ادامه مطلب ناباور نموداری که رسم کرده بود را به مؤمن نشان داد و این طور ادامه داد. حالا فرض کن که این آزمایش را در یک ظرف آب انجام دهیم. در ظرفی پر از آب ساکن، یک صفحه با دو شکاف قرار می دهیم. یکی از شکاف ها را باز می کنیم و با انگشت به آب ضربه می زنیم. موجی که درست می شود به شکاف می رسد. بخشی از موج که به شکاف می رسد، از آن عبور می کند و همچون یک موج جدید از پشت شکاف مجددا حرکت خود را آغاز می کند و گسترش می آبد. موج جدید هرچه از شکاف دورتر می شود میگردد و ارتفاعش کمتر می وقتی به بخشی از دیواری روبروی ظرف که به شکاف نزدیکتر است میرسد، بیشترین ارتفاع را دارد و هرچه در نقاط دورتری به دیواره برخورد میکند، ضعیفتر شده و ارتفاعش کمتر میگردد. اگر نمودار ارتفاع موج رسیده به دیواره را رسم کنیم، از آنجا که حد اکثر ارتفاع موج در نقطه روبروی شکاف بوده، و هرچه موج در نقطه دورتری با دیواره برخورد کرده ارتفاعش کمتر شده، این نمودار به دست می آین. انتظار داریم اگر شکاف یک را ببندیم و شکاف دو را باز کنیم، نموداری مشابه در طرف دیگر به دست آورید. مومد، آیا غیر از این می شود؟ خیر، اتفاق دیگری نمی افتد. حال اگر هر دو شکاف را باز کنیم، نمودار ما به چه شکلی در میآید؟ آید؟ مومن، میدانم چه می شود. اگر هر دو شکاف را باز کنیم، هر موجی که با برخورد انگشت ما به آب ایجاد می شود، در سطح آب گسترش یافته و به جلو حرکت می کند تا به دو شکاف برسد. این موج در محل شکاف ها از هر شکاف که عبور می کند، همچون یک موج جدید شروع به گسترش به جلو میکند یعنی پس از شکاف ها دو موج خواهیم داشت این موج ها در نقاطی با هم تداخل میکنند یعنی جایی که قله یک موج با موج دیگر برخورد میکند در آن نقطه قله ها با هم جمع شده و قله بلندتری را ایجاد میکنند در جایی که دره یک موج با قله موج دیگر برخورد می کند. این دو همدیگر را خونسا می و آب در این نقطه نه بالا می و نه پایین می آید بلکه بی حرکت می ماند. که بر روی دیواره رو به وجود می آید هم، حاصل همین تداخل خواهد بود. یعنی در جاهایی که قله ها با هم جمع می شوند، آب به نقطه بالاتری برخورد می کند و در جاهایی که ها و ها با هم جمع میشوند آب اصلا حرکتی نمیکند. نموداری که بتواند این طرح تداخلی روی دیواره را بر حسب ارتفاع برخورد آب به دیواره رسم نماید چنین شکلی خواهد داشت مؤمن خودکار را از دست ناباور گرفت و نمودار طرح تداخلی را رسم کرد ناباور کاملا درست گفتید از هر موج از هر دو شکاف عبور میکند یعنی ما ابتدا یک موج داریم اما این یک موج گسترش مییابد و از هر دو شکاف عبور میکند و به دو موج تقسیم میشود هر موج به وجود آمده هم باز گسترش مییابد و بسته به اینکه در کجا با دیواره برخورد کند و بسته به تداخلی که با موج دیگر خواهد داشت در ارتفاع مشخصی به دیواره اصابت خواهد کرد اکنون بگذار ببینیم اگر این آزمایش با یک ذره ریز بنیادین ماده مانند الکترون انجام شود حاصل کار چه خواهد بود؟ این بار به جای دستگاه پرتاب کننده گلوله از یک دستگاه پرتاب کننده الکترون استفاده می کنیم و پس از صفحه دارای دوشکاف جای دیواره یک صفحه ثبت کننده برخورد الکترون یا دیتکتور قرار می دهیم. اکنون یک شکاف را باز می کنیم و دانه دانه الکترون ها را پرتاب می کنیم. که از برخورد الکترون ها به دیتکتور حاصل می شود شبیه همان طرحی است که با پرتاب گلوله ها و نیز موج آب پس از بازگذاشتن یکی از شکاف ها به دست آوردیم. پاورقی، اگر عرض شکاف خیلی باریک باشد، مجموعه الکترون ها برخلاف گلوله نه فقط در نواهی روبروی شکاف بلکه در سراسر دیتکتور کمابیش پراکنده می شوند و نمودار پراکندگی آنها شبیه نمودار موج آب خواهد بود. آنگاه که فقط یک شکاف در مقابل آب باز بود. این اولین ناسازگاری با فرض ای بودن الکترون است. ادامه مطلب یعنی احتمال برخورد الکترون ها به نقطه ای از دیتکتور که مقابل شکاف یک است از همه بیشتر است و هرچه از این نقطه دورتر میشویم، برخورد کمتری را شاهد هستیم. نکته مهم این است که هر الکترون فقط به یک نقطه برخورد می کند. لذا نتیجه میگیریم الکترون یک ذره است منظورم این است که الکترون همچون موج عمل نمیکند هر موج آب پس از ایجاد گسترش پیدا میکرد و سراسر دیواره را تحت تاثیر قرار میداد اما الکترون فقط در یک نقطه اثر میگذارد و از این نظر رفتاری کاملا ذره وار دارد مؤمن انتظار دیگری هم نداریم ناباور درست است با شناختی که ما از ذرات ماده مثل الکترون و پروتون داریم هر ذره محدود به فضای مشخصی است و هستی و جرم آن هم در همان فضا وجود دارد علاوه اینکه میدانی همچون میدان گرانشی و یا الکتریکی هم در اطراف خود ایجاد کند به هر حال هستیش در همان محدوده وجودی خودش قرار دارد این خصوصیت یک ذره است و این همان درکی است که ما از ذرات مادی داریم همان که تو گفتی یک درک شهودی است و یا هم یک درک شهودی است مؤمن تا اینجا مشکلی نمی بینم ناباور تا اینجا هیچ انسانی مشکلی نمیبیند و همه چیز معید همان درک متعارف ما از ماده و ذرات مادی است. اکنون هر دو شکاف را باز می کنیم و الکترون ها را دانه دانه پرتاب می کنیم. توجه داشته باش که الکترون ها را نه با هم و چند تا چند تا بلکه یکی یکی و جدا جدا پرتاب می کنیم. انتظار داریم اگر الکترونی از شکاف اول عبور میکند همچون گلوله تنها از همان شکاف عبور کند و باز بودن یا بسته بودن شکاف دیگر هیچ تأثیری بر الکترونی که مسیر شکاف اول را برگزیده نگذارد چنانکه در مورد پرتاب گلوله‌ها چنین بود اما چیزی که مشاهده میکنیم کاملا غیرمنتظره است وقتی هر دو شکاف باز است، الکترون ها به گونه ای بر دیتکتور اثر می‌گذارند که نشان می‌دهد به بعضی قسمت ها اصابت می کنند و به بعضی قسمت ها اصلا اصابت نمی کنند. مناطقی که الکترون ها هرگز به آنها برخورد نمی کنند، هستند که اگر فقط یک شکاف باز بود، برخورد به آن مناطق صورت می گرفت. ولی حالا که هر دو شکاف باز است، دیگر به آن مناطق برخوردی صورت نمی یادآوری می کنم الکترون ها به صورت تک تک و در زمان های جداگان پرتاب می شوند و با یکدیگر تداخل ندارند و در عبور یکدیگر از شکاف ها مزاحمتی ایجاد نمی کنند. پس از پرتاب های پی در پی فراوان نموداری که از برخورد الکترون‌ها به دتکتور رسم شود شبیه نمودار تداخل امواج آب است. آنجا هم در بعضی مناطق دیوار آب ساکن می‌ماند و بالا و پایین نمیرفت. این نمودار و این طرح ایجاد شده از برخورد الکترون‌ها چنین می‌نماید که گویی هر الکترون که پرتاب می‌شود، از باز بودن هر دو شکاف خبر دارد و همچون موجی از هر دو شکاف عبور می کند. پس از هر شکاف موج جدیدی از آن تک الکترون به وجود می آید و این دو موج جدید با یکدیگر تداخل می نمایند. اما زمانی که تک الکترون باید روی دیتکتور بنشیند و خود را نمایان کند دیگر نمیتواند مانند امواج آب عمل کند و بر سراسر دیتکتور اثر بگذارد. اینجاست که گویا الکترون تنها یک نقطه از دیتکتور را برای اثرگذاری انتخاب می کند و این موجها دوباره به یک الکترون واحد تبدیل می شود. مومن، متوجه نمی شود. تو می الکترون مانند موج پیش می رود. و دیگر به صورت یک ذره در یک نقطه مشخص از فضا نیست این موج چیست دقیقاً چه چیزی موج می‌زند ناباور فیزیکدانها ها ادعا نمی کنند که می‌دانند این موج چیست اما برای توضیح این پدیده فرض را بر این می‌گذارند که آن چیزی که موج می‌زند احتمال وجود الکترون است نه خود الکترون گویی که این امواج احتمال پس از عبور از دو شکاف با یکدیگر تداخل میکنند وقتی به دیتکتور میرسند در جاهایی همدیگر را تقویت میکنند در این جاها احتمال اینکه الکترون خود را نمایان کند و بر روی دیتکتور ظاهر شود حد اکثر است این امواج احتمال وجود الکترون در جاهایی یکدیگر را خونسا می میکنند در این نقاط از دیتکتور احتمال خودنمای الکترون صفر است. مومن نمیفهمم احتمال یعنی عدد. تو میگویی که به جای یک جسم مادی و دارای جمو هستی آنچه در فضا حرکت میکند و به قول تو موج میزند اعداد هستند جایگاه اعداد در ذهن است نه در فضا. فضا جای هستی واقعی است. مؤمن چند لحظه سکوت کرد و سرش را در میان دستانش که روی میز تکیه داده بود نگه داشت و در حالی که به پشخابش خیره شده بود گفت اعدادی که در فضا حرکت می کند. در فضا با یکدیگر جمع و تفریق انجام می و نهایتا در هر نقطه از فضا فقط احتمال حضور الکترون را مشخص می کنند. نه اینکه به این حضور قطعیت دهند. سپس سرش را بلند کرد و رو به ناباور گفت الکترون چگونه تصمیم می گیرد که کدام احتمال را برگزیند؟ مسلما نقاط زیادی هستند که احتمال حضور الکترون در آنها صفر نیست. الکترون چگونه یکی از آنها را انتخاب می کند؟ آیا تو از درستی آنچه گفتی مطمئنی؟ ناباور ببین آنچه گفتم تفسیر و تعبیرهایی از مشاهدات انجام شده است که توسط فیزیکدانان صورت گرفته چیزی که پس از اکتشافات مربوط به حوادث حیرت انگیز سطح کوانتومی یعنی سطح ذرات کوچک صورت گرفت یک مسئله را برای دانشمندان روشن کرد و آن اینکه آنچه تا آن زمان در مورد ماهیت ماده می پنداشتند کاملاً غلط بوده است. هیچکس هنوز نمی داند که ماهیت دقیق ماده چیست اما مسلما تصور متعارف و همیشگی ما که بین همه انسانها مشترک بوده و هست کاملا غلط بوده است. در طی حدود یک قرن گذشته، تنها نتیجهی که از بررسی بیشتر نظریه کوانتوم و مشاهدات مربوط به سطح کوانتومی به دست آمده این است که ظاهراً ذهن بشر در مورد درک و تصور واقعیت ماده ناتوان است. اگر تا پیش از مشاهده پدیده های کوانتومی از لحاظ منطقی و فلسفی لازم بود درک غیر مستقیم خود از ماهیت ماده را زیر سؤال ببریم زیرا باید احتمال میدادیم که شاید درک غیر مستقیم ما از ماده غلط باشد، اکنون دیگر فهمیدیم تنها این نیست که شاید درک ما از واحدهای مادی غلط باشد، بلکه قطعا درک ما غلط است و ماهیت ماده به هیچ وجه آن چیزی نیست که ما تصور میکردیم. حال که نتوانسته این ماهیت ماده را درک کنیم، پس نمیتوانیم بگوییم امکان ندارد ماده بتواند واحدی چون آگاهی را بسازد لذا برهانی که برای اثبات غیر مادی بودن آگاهی یا روح یا خود یا نفس اقامه کردی هیچ بنیانی برایش نمیماند شاید ماده بتواند واحد آگاهی را بسازد آن هم بدون نیاز به دخالت یک خدای دانا و توانان به هر حال تو دیگر برهانی برای ادعایت نداری مومن، آیا تو می توانی ثابت کنی ماده قادر است به تنهایی آگاهی را در مغز بسازد؟ ناباور تو بودی که جهت پیدا کردن راهی برای اثبات وجود خدا به دنبال استفاده از آگاهی یا روح بودی و سعی کردی ثابت کنی امکان ندارد ماده بتواند واحدی چون روح بسازد. تو بودی که سعی کردی ثابت کنی روح نمیتواند مادی باشد تو بودی که ادعا کردی ماده را میشناسی و میدانی چیزی چون آگاهی نمیتواند از ماده ساخته شود اکنون معلوم شد که چون ماهیت ماده را نمیشناسی پس باید دور برهانت را خط بکشید قرار نیست دیگر هر آنچه را هنوز قادر به توضیح آن نیستیم به خدا نسبت دهیم. دیگر باید این رویه را بعد از هزاران سال کنار بگذارید. مؤمن کاغذهای روی میز را برداشت و یکی یکی به آنها نگاه کرد. سپس گفت من باید درباره فیزیک کوانتوم بیشتر مطالعه کنم تا ببینم چه میگوید. هفته بعد باز هم صحبت خواهیم کرد. گرامیان همینجا در صفحه 49 فایل آوایی سوم از کتاب برهان ایلیت پایان پیدا میکنه. تا درودی دیگر پید